تو سودا به روی سیاه وشت و اندیشه گشت و دلش برگنید تنان شد که گفتی تراز نخست وگر پیش آتش نخازه یخست کسی را نزدیک او که پنفان سیاه رد را بگو که اندر شبستان شاهد جهان سلام در شبستان جهان نباشد شگه در شدی ناگهان به دو غور مرگ شبستان نیم مرگویم که با بند و دستان نیم ده روز شبگیز راوه رفت بر شاه ایران خرامی ته به دو غورت ایشه هی که چون تو ندیده خوشیده ما نه در زمین کس تو پرزنده تو جهان نه در زمین کس چو پرزند بسنه نه هم در زمین رو پرزنده ما ندیده زمین هم کسی پرزن تو پرزندتاره جهان شاد با بادا به با پیوند تو پرستش به توی شبستان خویش بر خواهران و شقستان خیش همه رویپوشیدگان را ز مر خون دل ست و خرز آب چک نمازش بریم و نظار آوریم درخت پرستش به بار آوریم به دو گفت شا این سخن در خور است بروبر تو را مادر است به فهبت سیاوخش را خواند و خون نکته میر نسوننف پس پردهٔ من تو را خواهر است که سوداوهچون مهربان مادر است ترا پاکی ازان چنان آفرید که مهرآورت بر تو اس کفتگید بویژه که پیوسته سون چون از بین چون پس پرده پوشیدگان را ببین زمانی به تا کنند آفرین اینجا باز یه دیگه توجهتون رو جلب می کنم به دائم مراجعه کردن به فرهنگ. این دوتو بیت همین طرف اول, اول پس نگه چون سوداوه روی سیاوش بدید اولا سوداوه میگه حالا در شانه ما سوداوه دیدیم. به و به و هم بدل میشه اخلا فراغون مثلا زبان رو در کردی میگن زوان بهش تبدیل شده به به صداوه صورت دیگریست از صداوه یا مثلا وزیدن باد رو وزیدن سهل باد دیگه وزیدن توی بعضی متناه هست وزیدن به به بدل این خیلی عادی اولین صودابه همون صودابه چه سوداور روی سیاهبش بدید پرندیشه گشت و دلش فردمید عاشق شد پلاسه در دو کلمه میگه تو فکر بر رفت و دلش دمیدن به معنی یعنی زد فیدیدیگه دم زدن معنی نفس زدن دلش دمید یعنی دلش دروی کرد به تاب تاب کرده <تصفيق> این بهت وعدی رو چنان شد که گفتی تاظر نخست و گرد پیش آتش نهاده یخست یه وقت من انوز دانشجوی دوره دکتری بودم انوز دکتر نشته بودم دانشگاه هم نرفته بودم تو دو دوره کار میکردم یکی از رفقام میرفت مدرسه دبیرستان درد می زدت از رفقه که که خوانمون اداره من کار می کرد اونم بعد رفت دانشگاه مشهد و اونجا استاد شد و بعدم حالا مورده خودش بیاموزی خوانم دنبال این بازی بود زنگ زد به من که معنی این به چیه چنان شد که گفتی ترازه نخست و گرد پیش آتش نهاد یخ. مطلب رو می دونی. مطلب اینه که سیاوش سودابه روی سیاهوه شدید، دلش تاپ تاپ کرد، عاشق شد یخو بزنه جلو آتیش تو میشه وا میره دیگه وا رفت. ما تو مرکوش اما به اول یه قد اشکالی چنان شد گفت گفتی تراز اون دوست منم تلفن کرد، گفتش کردیم چنان شد که گفتی تراز نخست یعنی چی؟ سوارم میخواست درس بده، میخواست مشورتی با هم بکنه که یه وقت پرس نگیر تراز به معنی نقش هاشی جامعه و این یا چیزایی که روی لباس برای زیبایی نقشی که به وسیله بافتن نه به وسیله رنگ کردن اونو میگن تراز مثلا فرض کنید که زن بافتن پیرهن نخ‌های زرین نخ‌های گلابتون نخ‌های زرین میذاشتن که فرق فرق بزنید مثلا حافظ میگه تراز پیرهن زرکشم مبین چون چم که سوزهاست نهانی در اون پیرهن تراز اون نقش خاصیه جامعه و نقش جامعه است که برای زیبایی هست اما چنان شد که گفتی تراز نرخص یعنی چی نخ تراز نداره دیگه اون منده دی خدا سر هنگ گیر کرد البته باز اینجا یعنی مثل نقش جامعه بازم مات شده بود دیگه شده. مقصود اینه اما الپون کرد و گفتش که تراز نخ و گفتم شاید مقصود نخ تراز اضافه, اضافه مقلوبه و یه از این چرت و فتا گفتم که به دل خودم نمیکسبید یه دفعه گفتم صبت کن گوشیر نگه داره الان رفتم فرهنگ داشتم برهان قاطع داشتم نگاه کردم و خواهش می‌کنم شما خودتونم برید تون این بخش نخ رو نگاه کنید نگاه کردید دیدم نخ 13 تا معنی دیر اولا یکیش مثلا صف سپاه برای همه اینا هم بید یک معنیش که به اینجا میخوره میگه و گلیم و جامعه منقش را نیز گوویند نخ یعنی پارچه نقشدار نخ یعنی گلی نقشدار بنابراین طراز نخست یعنی مثل صورتی مثل زینتی که روی روی پارچه یا روی جامعه باشین که حرکت داریمیم پیکگه میگه هم گفت و من تا اون روز هستم به عقلم رسید که نخ رو برم فرهنگ وجود کنم این درس بود برای من که ما یک معنی نخ رو همون از مادرمون یاد گرفتیم به کارمون درست دوازه تو معنی دیگه که نمیدونیم و برای دیدنش رو برای یاد گرفتنش هم هیچ راه دیگری جز بردوه فرهنگیست بنابراین هیچ تردید نکنید در اینکه اگر روزی ای شک کردین برای آب، برای نون، برای خواب، برای نمیدونم هر لغت پیش پا افتاده‌ای که به نظرتون میاد، رجوع کنید به فرهنگ. برای اینکه خیلی خیلی این مطلب مثلا در ادب مهم. به هر حال چنان شد که گفتی ترازه نخواست. یعنی مثل نقش روی گلیم یا نقش روی پارچه اگر پیش آتش نهاد یخ هست یا مثل یخی که جلو آتش بزده بوشن وارد کسی را فرستاد نزدیک اوی اوی یعنی کی سیاهش کسی را فرستاد نزدیک اوی که پنهان ببینید کار زنارو. رو <تصفيق> که پنهان زیا رد را بگوی چند در شبستان شاه جهان نباشد که یکف در شهروان جهان. فکر یا همون است که به صورت غیر مخففش، دائم به بکار می‌بین رات، رات و رد هر دو یکیه. مثل چه و چه، مثل گاه و گاه، رات یعنی جوان مرد و آقاو که پنهان سیاه رد را بگوی که اندر شبستان شاه جهان نباشد شگفت در شب ناگهان اشکالی نداره شگفت انگیز نیست اگر شما یه وقت سرزده ناگهان یعنی سرزده بیاید به حرم شاه به این عنوان که خب من که در حکم مادرتونم بچه ها و هم که اونجا هستن که خوهرهای تو هستند و تو ما رو ندیدی ظاهراً رفته بوده پیش رستم و اونجا تدبیت شده بود و اونجا چیز بوده اینا ندیده بوده هیچ در ضمن به شما بگم که ما چون پدری داشتیم و مادری رو توی خونه یا خوهر و بردر رو هم بزرگ میشدیم همه ما اینه که برامون این قابل فهم نیست تو دست و سلطنت قدیم به عطابه اینا گفتن. هر بچه که متولیمتون میدازم یکی این بار یه گوشه دیگه مملکت نو بزرگ میکن بنابراین خیلی اونجا امر عادی بود که مثلا پسره شده باشه 25 سالش دختران شده باشه خواهرش 13 سالش ندیده باشه نصلا و در داستان دیسرامین که 20 اسم اون دختره و رامین اسم عاشق اونجا این دختر یه یعنی میویس یه برادر داشته به نام ویرو بعد از این که دختر خانم وقت شوهر کردنش میشه و بالک میشه و حاضر میشه برای یعنی فکر این بودن که حالا عروسی کنه مادرشون میگه که برای تو هیچ شوهری بتا از برادر ویرو نیست و چرا بذاریم چیز بشه ایلیسه عغدی درست می‌کنن البته این عقد اتفاق نمی‌افته میان به زور می‌برن و داستان مفصل اتفاق نمی‌افته و عاشقی که مثلا رابین و اینا ولی این دوتا رو عقد ازدواجشون هم می‌بستن این اگه این خواهر در توی خونه دیده باشن از وقتی که مثلا خواهر اینقضی بوده کنداقش می‌کردن روز به روز با هم بزرگ شدن و زر زده و ماجرایی رفت تو که نمیشد بگیرش امکان نداره که ولی یه فیل بوده رهنا زیبا و قشنگ دکتر خانم هم قشنگی اومده و خیلی اصلا که هیچ با هم پیمندی نداره بنابراین این که میگه که بیا در شبستان و بیا خوهراتو ببین و نمیدنم این حرفا این خیلی خیلی عادی بوده که اصلا این رو ندیده بوده اون ما کی اصلا که نیسته گفتم شبستان رو استان پساوند مکانه مثل گلستان، مثل بوستان شبستان این جایگاه شب خانوما همیشه در شبستان بودن یعنی بیرون نمیاندن از خونه برای که پوشیده روی بودن و بر ایران واستان هم این روی پوشیدگی بوده است نه برای حرام بودن و اینکه مردا مثلا نامحرم نبینند، اینا برای این نبوده برای رعایت احترام بوده که شاهزاده خانمها او اینا در منظر و مرعای مردم نمی آماده برای اینکه حتی مردای مثلا خاندان سلطنت هست هم که مرسومه حتی در کشوری مثل انگلیس شاه که میاد بیرون هزاران هزار جمعیت جمع میشن و وام میسن دو خشته و سه خشتی که بیبینن آقا رو سوار عصد نظر میره بنابراین، خوب نبوده که یه شهازد خانم وقتی هم بشه و جمعیت بیارن و دست بزنن و برا بکشن و خوب نبوده است که همیشه در شبستان ها بودن، در حرم بودن، بقیه رفت آمد هم سوار اماری و تخت روان و اینا میشنن که پرده افتاده بوده و اینا نمیمادن در منظر مرا میگه که برا به سیاهش بگو که انگی نیست اگر بیایی سرزده در شبستان شاه جمعه در جواب اولین اولین حمله سوداور رو دفت بدون گفت یعنی به اون فرستاده گفت مرد شبستان نیام من احل حرامس برای اونها نیست مجوگم سراخ دنبال من نیا این کار که با بند و دستان نیام دست سه طمعنی داره یکی جمعه دست که اینا همه من میدون دست دستان دوته دیگر لغب رستم لغب باقای رستم <تصفح> <رستن برستن. تصفح> لغب زال رستم دستان یعنی رستم پسر دستان دستان چیز لغب زال ایداروس حالا میگم چرا قهر کردی؟ سيفون داستان یعنی مکر و مکرو, هیله و فریبه. اینجا این معنیه. اگه منو من بفهمم اون من نه یا بنده به معنی مکر و هیله است. ماجوعم که با بند و دست دفتان حالا علت اینکه این, این لفظ خوشحالیت نیست لغب کسی بذارن طبی یه دیگه این که زال رو گفتن دفتان به دلیل این بوده که زال با سی ارتباط داشته و سی مرغ اونو بزرگترگ بوده و سی در افتانه مرغ داناییست همه مشکلات رو چاره می کنه. از جمله اولین باری که زال متوسط بشه بشه تیمور، به دنیا آنه رستم از رودابه مادر رستم نمیتونست بذاردش عکش بزرگ رستنگی بوده و نمیتونست بذاردش و داشته میمورده ظالم ناراحت نراحت قیلی، آشغ و بودن میبینه که زنک داره از دست میره بچه میره دیگه از می میرن خیلی ناراحت بوده، یادش میاد که فری داده بوده بهش و بهش گفته که این فرایگاهات شدنی من میام میره او فرایچنه اون سیماک میاد میگه چه کار کنم و داستان اولین سیزاریان اولین که چه ارز کنم حالا بهتون میگم و اولینشم با این حالا پیش آمد به حال داستان سیزاریانه، میگه نخستین به می احرامه هست کن، شرابم به عنوان اولین داروی بیوشه بدی بهش که نفهم میدی که سهر از در اینا رو حسن نخستین به می ماه را مست کن تا در بیمه اندیشه را پست کن بعد یه موبت خیلی باهوشی بگو بیاد که این کارا رو بلد بوده برای اینکه موبدان روحانیان بودن دیگه روحانی ها همه علما رو اون روزگار اینا بلد بودن دیگه بو علی سینا تو منصه آخوندی در اومده بوده دیگه عبو ریحان تو مرسه آخوندی دار اومده بود دیگه همون چطور فیقه حسوم اینا بود بنابراین موبد این چیزن هم میگه می موبده بگو بیاد با یه کارد بسیار تیز و پحلوی رودابر بشکافه و بچه را از بیرون بیاره بعد همین گیاه هایی که به تو میگن بگیر و با شیر اینا رو مخلوط کنی یه مرحمی و بذار روی اون بایدگی بعد هم پر من رو به مال به او و خواهیدید که چه اثر موجز و سفیده رو زنک شفا میدونید می که در روم قدیم هم معروفه که سزار زار سزار سه زار به همین به دنیا آمدید و به همین دلیل این عمل روش میگن سه یعنی عمل اول ولی افسانه های متعدد تقریبا تمام اقوام دنیا یه قصده اینجوری داره که زنی نمیتونسته بزاد معمولا هم پهلوان و قهرمان اون قومه زن نمیتونسته بزاد زاد دره از نشون از جمله رستن برها دفعه اول در اینجاست که متوصل میشونه سی مغزال و به همین دلیل کسانی که زال و دوست نداشتن و مخالف بودن و با رستن مخالف بودن چون اینهای استقلال مانندی هم داشتن دیگه جاشون در تیستان بود دیگه بادشاه جاش مثلا در تیزفون بود فرض کن در بغداد خیلیه مثلا یا در پارس بود مثلا روستان در تیستان جای دور افتاده بود اونجا فرموربای اونجا بودن گروهی اون هم خب باش مخالف بودن میگه اینا زال رو وقتی که میخواستن وصف بکنن می‌گفتن زال جادو، این جادوگره، این فلانه به همین دلیل هم مثل شو دستان یعنی معنی شو داستان دستان لغب زال، به این معنی، خیلی خوشایدی نیست یک معنی دیگرش هم، منم یادم رفته بود معنی چهارم دستان به معنی آهنگ و ترانه و نواز قلبل رو میگن هزار داستان، هزار داستان. اولا این هزارش همون هزار عدده جاتون باشه برای اینکه گاهی این میرزه بینویسا و عرض کنم که آقا معلمه های عدبیات رو بول میگن هزار عدد داره میگن هزار برای این دوتا با هم فرق بسته چینا فرق نداره همون عدد هم تلفظ صحیحش هزاره منطقه ما فارسی زبونا راحت تریم که ار و اه بگیم شون از خفیفترین سباکترین حرکات هزار شده هزار اما چرا بلبلو میگن هزار دستان؟ اولا هزار گاهی عدده نونساد مردم و یک گاهی هم قید کسرته وقتی میگیم هزار پا، هزار دفعه که نداره اون هسته پا بیشتر بیشتر پا بیشتر نداره فرم هزار پا. یا مثلا یه ناحیه ای از کوهستانی نزدیک تهران بشه میگن هزار در ره هزار در ره که نداره یه کوهستان دیگه ای هست در نزدیک تبرید اینجا بشه میگن هزار در باشه هزار مسجد برای اینکه سنگ که توپو آهکی بوده تراش به صورت مناره ها درست شده بشه میگن هزار مسجد. یعنی بسیار. هزار هزار یعنی بسیار اینجا بیدی کس شد بول اگه خوندنشو دیده باشین که نمیدونم کدوم شما دیدین شنیدین صدای بول همه دیدین همه شنیدین تو نه کی دیده دستون بلن کن کسانی که من تون بالا تهرونم بالا تهرونی میدونم ولی میدونم در شیراز این جاهم هست کسان که من فیرون باشن در شمران، در مثلا دزاشوب یا الهیه و که با آقای نسبتاً بزرگ داره وقت خروب و سهرگاه و هوا خیلی خوش میشه و قشنگ و اینا بلبل میخونه و این خوندن هم برای جفتگویه بلبل نرم میخونه برای اینکه مادر رو سمت خودش جلب قناری رو همشون در قفس می‌ذنه می‌خونه ولی خوندن قناری یک نواخته یعنی انحنا نداره بالا پایین نداره هم رو میزنه تا بعد هرج وجودش نیست یک توره بلبل اینطوری نیست اگه صد تا بخونه هر توش به صورت جداگانه است یعنی خوندنش بسیار بسیار متناوب دو دفعه آهنگ به صورت نمی‌خونه به این دلیل بش میگن هزارد یعنی هزاث آهنگ بله پس دستان به معنی مکروفری به سعدی یعنی بیتی برای معشوقش یکی که میدونید که دستشون رو خانمان نگار می‌کردن همیشه به و دختران و داشتن داشتم حالا یکی دیگه امروز نیست عرض که یه چیزی مثل دستکش دستشون می‌کردن این دستکش سوراخ بود. سراخ های مثل گلو یه بسیار قشنگ ساقه گلو نقشه نقشه خوشگلدش این دست میکردن روی می هنه ها هم کفش سوراخ بود هم روی هنه این دست میکردن هنه ها می نتیجه؟ جای سوراخ ها رنگ میگیره باقی دست هم رنگ نمیده وقتی دست کش در میاردن دستشون میشستنن روش گلو بوته بود و قشنگ بود دست. این دست رو می گفتن دست نگار کرده نگار کردن نگار کرده یا دست نگارین یعنی همین نفسی کشتی این هم که معشوق رو بهش میگن نگار به دلیل اینه که سنا دستون این کار می کردن مردا که نمی کردن بنابراین نگار این معشوق اصلا اینه سعدی میگه به دست ها نگارین وقتی و, و هم ها و دستشون تازه نگاهش قشنگه تازه است اینا سعی میفتن نشون بدن همجوری که حالا به یه تحبیب رو روح میکشن دیدیم تو فایلت های مهمونی که یه جوری میکنه که انگوشتری ببینن چیزشون رو زینت رو رو ببینن اون وقت هم همینطور به یه نحوی اینو چیز میکرد. صدیه میگه به دست های نگارین چو در حدیثایی این شروع کنی به هر صدن هزار دل ببری زین‌ها از این دستان اینجا دستان هم جمع دست هم یعنی ظن هار از این مکرو فریف و دلبری به دست های نگارین چو در حدیثایی هزار دل ببری زین‌ها از این دستان این نگارم پاک می شده به زودی دیگه باید دوباره بکنم دیمون سخانه بستن اینی که میگه حس حسین دلاغویست پنجه ایست نگارین تا به قیامت پر اون نگار نماند این صدیق تعریف که نواری خونده در دستگاه شور بسیار قشنگ و اولم همین شعر رو و همون دستگاه رو عدیب خونساری خونده بود همین غزل سعدی رو خونده حسن تو دایم. این قرار نماند مست تو جاوی در خمار نماند ای گل خنداه نوچه کفته نگه بلبل بل. که نو بهار نماند پار گذشتم چه دیدی از خمشاوی ملک زلد امسال و همچو پار نماند حسن دلاویز پنجه نیست این تا به قیامت بر اون نگار نماند عاقبت از ما عبار ماند رن تازه تو بر خاطری کو نماند پار گذشتان که دیدی از قاموساتی وگر زادم صاحب و همچو پار نماند سعدی عاصفت بی قرار چرا از ته چیزی که برقرار نماند ماشان جان ولی کو همتی که برید سعدی نگاه کن و دوباره بیبی و حفظش کن و اونا یک خیلی کار بگیم ولی خب نوار تحریف نتونیم گیر بیریم نواریتون هم شعور دشت دستگاه شعور خونده همین غزله خونده خوب هم خونده خب مجرویم که با بند و دستان نیم یعنی اهل مکروفری دگر روز شبگیر و رفت بر شاه ایران قراموی تفت تفت یعنی شبگیر یه چی؟ شبگیر به وقت شب بلد این بلد میسید هم جوری که هم سوا تاریکی صبح خیلی زود رو بهش میگن شبگیر یعنی سهرگاه هم. دیگر روز شبگیر صبح زود رفت و را به شاه سودابه رفت برای شاه ایران فرامیت به دو گفت که شهریار سپاه که چون تو ندید از خوشی و ما قواه میکن نه در زمین کس تو فرزند تو این کسی ندیده جهان شاد با به پیوند تو روشن دیگه فرستش به سوی شبستان پیش، رفت شها به خودش اول مستقیم گفت زیروبار نرف بعد رفت به شها گفت که این بچه رو بفرست ببینه <تصفح> فرستش به سوی شبستان خیلیش برای خوهران و فقستان خیلیش. گفتم استان که استانه، یعنی پسند مکان، جا باقی موندهش میشه چی؟ میشه فرق در پلن دیگه‌ای نمی‌بینیم که این صفحه‌اش شده لغب پاچهان چین، پخبور، چین نشت از نشتیده بودیم؟ پخبور لقب پاچهان چینه پخبور چین یعنی پاچهان چین، لغب... مثلا هستم این امپرادور چین رو میگفتن پسر خدا دیگه به هم بدل میشه پور یعنی پسر بقیه یعنی خدا در فارسی باستان بگرد باگه... یعنی خدا یک فرمولی هست در کتیبه های احفانشی هم اولشی دعا هست که تو همه کتیبه ها میشه میگه بگه وزرکه اورمزده یا ایمان بومیم ادا خدای بزرگی از اهورا که این سرزمین رو آخری دنبالشون که های نریان با اینکه به کار ما نمید بگه یعنی خدا بغفور یعنی پسر خدا فقفور همونه فقستان یعنی جای مقدس و هرمسران جای مقدس بید <تصفيق> یک کلمه‌ی دیگه داریم؟ بی کجاست؟ نقصی رستم؟ کوهیست. کوهیست بی سوتون، نزدیکی کرموشاه نه، نزدیکی کرموشاه است. همجه فرهاد اونجا رو کوه کنده و چی این 20 ستون هیچ ربطی به ستون نداره این 20 ستون در اصل بوده بهستان یا بقیستان استان استون میگن یه گل ستون مثلا نگار ستون اینه که بقیستون به استون و اتا دو ستون فقستان این جایگاه خدا سو مقدر فرستش به سوی شبستان خیش برای خواهران و فقستان خیش همه روی پوشیدگان را یعنی خانوما همه روی پوشیدگان را زمهر پر از خون دلست و پر از آبچه مشتاق دیدار این جوان هستن این خودش بوده میذاشت گردن اونو نمازش بریم و نصار آبریم نماز رو قبلا توضیح دادم و انید دروبه دروب نیایش گفتیم نصارم یعنی که پخت بود نثار نصار یعنی پراکنده نقل و پول و اینا که میرزم سر کسی میگن نصار کرد حتی این برنجه زعفر رو که روی پلو می رسند میگن نصار کن روش یعنی که یه جنبین برینجار رو پخش میکنم روی زفرمزده رو میگن نصار کن یعنی پراکنده نمازش بریم نصار آوریم درخت پرستش به بار آوریم پرستش هم اینجا به معنی است. گفتم پرستیدن معنی خدمت کردن پرستار به معنی خدمتگذاره هر در دنده‌ شاهنامه بارها من پیش خدمت میاد درخت پرستش به بار آوریم یعنی درخت خدمتگزاری رو میوه بهش میدیم این اصطلاح مثلا ادبیه که تشبیح کرده یعنی استعاره ای است درخت پرستش رو به میوه میاریم یعنی خیلی خدمت به دو گفت شاه این تا درخور در پراست و پیرادنره خوب در خور یعنی سایسته و سازوار، یعنی این حرف حسابی بر اون بر تو را مهر صد مادر است برای که تو در جایگاه مادرش هستی مثل مادرش هستی صد باز اینجا غیر کسرتی بعد سیاهاشو میخواد حرفی رو که اول سودابه خودش مستقیم به بچه زده بوده و زیر بار نرفته بعد میزرد تو دهنی شاه شاه بگی ستا وقت سیا خواند خاند و گفت که خون و پی و نکن خونم تو زنی نداشته، دلیلی این بودی که حالا شما سعودشت کابوسی نمیتونید اینا مثل مثل حلقه های زنجیر و هم متصله و علت این که به صودابه سو زن نداشته چون پادشاه بلکه زیادی زن داره همیشه به فکر این هست که ممکنه یکی از اینا به یک کسی فکرس رو ببینه پای دلش بلغزه مهری بیاره ولی میبینید که کابوس هیچ چیز نیست دلیلش اینست که این صودابه دکتر شاه هاماوران بود دکتر پادشاه یمن بود هاماوران مواهی یمن اینجا هست کابوس میره به جنگ این پادشاه زورش هم می‌چربیده به اون پادشا ظاهراً اطاعت می‌کنه و اون رو مهمونی می‌کنه قرار میشه که برمان عزت و اعترام و برای پیوند و برای صلح و آشتی دخترش هم بده همین سودابه بده به کیپاکس ولی همین یه جمع دختر داشته پدره و نمی‌خواسته این دختر از حال خودش بره میاد به دختره میگه که تو زنه می‌شهی این خواسته اینا دخترم هم چرا نه؟ یعنی بله دختر باید شوهر داشته باشه نمیشه خون باباش بگیری میشه گزه چرا نه دیگه چه شوهری بهتر از این پادشاه ها جهان میخواد بنام بگیره چرا نه پدر آغازش خیلی ترک میشه و میگه که پولایی بانه که همه رو گرفت من هم داره میگیره تنها چیزی برم مونده بود تو یه دختر رو دیگونم چرا برم داره میره به عوض رو به مهمانی از راه مکر برای اینکه او رو بگیره سود آبا پیغام میفرسته برای کابوس که نیا به این مهمانی این پدر من کلک بیره سرداره و میخواد تو رو بگیره کابوس این خیلی خودپسند و اینا بود و قدرت هم بوده فکر کرده که کسی از جرعت میکنه مثلا به این از گل بالا بگه گوش نمیکنه. بگرگونه که این از همین حرفای سوه زند، هست این داره میاد بعد میگیرنشون چوابی و وساطی میدنه، خلاصه میگیرن زندانشون وقتی زندانشون میکنن سودابه می میچسبه که من میرم فقط صوارم من زن این آقا هم، هر جا او هست بنا هستم هرچی باباش میگه نمیگنن بالاخره به قهر و تر پایمشه و میره پیش سوهر تو زندان و مدت ها تو اون زندان بوده تا رستم، سپاه می خبر میدن، و تحطیب میدن و از ایران میانو. آن و کنم که اینا رو جنگ می باشون رو شکست می و کابوس رو نجات میدن و وند دارن می آرن با زنشو هم این همچی که اینا مهربانی کرده و در اون روزگاه با اینطوری مونده و صودایی به این تحطیب بوده هیچ حد پنجش فکر نمی که این ممکنه که مثلا راه دیگری هم بره کافل از این که میگه که دل خانمون زده بوده و و این است که کاغوس هم بهش میگه که برو تو جای مادر تو و فلان اینا و سپهوت سیاه بخش را و گفت که خون و پی و مهر نتوان نمون خون یعنی همخونی دیگه نسبت و مقشی پی هم یعنی رگ و ریشه دیگه پایه مهر هم پس پرده من تو را خواهرم. که سوداوه مهربان مادر است روشنه بعد حالا ببینید این کابوس که بعد با سیاغش دعوا میکنه و باعث واقعا هم مرگش میشه خودش ببینید چی میگه میگه ترا پاکی از دان آفرید که مهر آورد بر تو هر کس ببین. میگه نمیشه کسی تو رو ببینه و دوست نداشته باشه. کدا تو رو تو ری آفریدی که هر کسی تو رو ببینه تو رو دوست داره یعنی کریزما داشته زیابش جاذبه داشته در حقیقت یه معصومیت رو هم داشته بیگناهی و نجابت و فروی ایزدی جوان و زیبا و پهلوانم تو بودی تو را پاکی از دان چنان آفرید که مهر آورد بر تو حرکت بدید ببیشه که پیوسته خون بابر ببینه بامخش باشه تو از دور بیند تو راتون تو از دوری تو رو ببینن تو رو ببینیشون پس پرده پوشیدگان را ببین زمانی بمان تا کنند آفرید سیاوشت بشنید گفتار شاه همی کرد خیره به در نگاه زمانی همی با دل اندیشه کرد بگوشید تا دل بشوید بگرد گمانی چنان برد کورا پدر هر روخت همی تا چه دارد بسرد که به سیاردان از دو چیره و دینا و دل و اگر من شوم در شبستان اون به سودا و یابم بسیرش یابم تمام داد پاسخ که شاه من داد و تخت و کلاه از آن جایگه کافتا بلند برایت کند خاک را ارجمند تو شاه ننهاد بر سر کلا به خوی و به دانش به آین و را مرامو بدان ساز با بخردان بزرگان و کارامو آزم و دهردان مگر نیزه و وگر نیزه و گرز و تیرو کمان نیزه و و, و, و کمان که چون پیچه من در صفه بد اگر تخت شاهان و آین بار وگر بز مرود و م... بز و می گزار شاه موزمن در شبستان شاه به دانش زنان که نمایند را گریدون فرمان شاه این بود گریدون که گریدون که فرمان شاه این بود فراین اون رفتن آین بود رفتن آین بود به دو بفت شاه ای فسر شاد باش همیشه خلد را تو بنیاد باش دخان کم شنیدم بری اونو که بید فضایت همین مغد من داری اندیشه بد بده همه شادی ها را از یا که از با داد بیایم کنم او بسیار یک لحظه وقت اجازه بدید من بسیار یا کنم که چلو خوا سیاه و شبون عاقلی بوده اولا دومی که حس کرده بوده همونجا از نگاه و از خیلی آدم باید ابله باشه البته که حسم نکنه من خودم خب بعد که وارد کار دانشگاهی شدم و حتی پیش از اون تو من از درس میدم سالها من از هدف اینو درس می و خب جوانم بودم دیگه سی و دو سه سالم بود مثلا که رفتم پدریس می کردم تو پدریسه و بعدم تا دکتران بودش رفتم دانشگاه و اونجا مرسای عالی تمام زن بود مرسای دختران مثلا تو دانشگاه مختلف مختلفم درست ندرم دختر و پسر بودن و خب هر آسیاب ها نو هم یکی روکر نیداره ولاخره ما هم جوون بودیم دیگه ارز کنم که گو یا نبودم. این یه مقداری تر از بودن به عنوان استاد موفق و آدمی که خوش صحبت و غرفای خوکیزن و شعرهای قشنگی می کنو این کارها و گاهی دل این بچه ها می و من می دیدم. اما خب کاری که نمی دوستم دختر جوون مثل نقل مثل 18 سالش 20 سالش من نزید که بعد وام اصطاد اینقدر ورخ رو زمین بود وام اصطاد دو ساعت اونجا که من از در بیام بگه آسلا <تصفح> دفلت خب من زن داشتم دو تا بچه داشتم زندگی داشتم حالا فرض کن بخوام با یه لبخند به این خانون را بدن خب نمیشه که من زن نمیتون تلاق بدن تلاق بدن بچه هم چکار کنه بعد بچه هم میسازنم بایی می مگه این با اون بچه این خیال میکنه و فکر میکنه و هیچ هم به نظرش نمیاد که اون باید بره آیندهش و با یه همسن خودش بسازه این که میگه من یه آیندهی ساختهی دارم الان و مثل استادم یا زهرون قبلا کارهای دیگه ما کردن دیگه بنابراین این کار بیهوده هست من سعی میکردم خودم رو با ابلهی بزنم و اصلا اون را نزنم یا با اینا فیلی کشک برخود بکنم برای اینکه یه خودت ده ست بدتیلگیشون بردارن اما نمیشه غیر از این که یعنی آدم نگاه که می کنه می بینه که این بابا مهره برده و بعد جوری بکنه که نشه دیگه هر صورت سیاوشم تا نگاه کرد دید که زنک نگاه شور دیگه نه. اصلا اینه که خب دقیقم بود باهوشم بود میگه وقتی که گفتار شاه رو شنید، خیره خیره به شاه نگاه کرد و فکر کرد که نکنه این به من یا به زنش یا به من بدگمان شده باشه چی تو محضه این داره میگذاره ببینید چقدر این داستان دقیق و زیباست اینا تو کتاب حسین کردن، امیه هرسلان این چیز نیست هیچا. ها نکنید که هر داستان رو با کنید همین همین مسائل به این دقت و به این چیز از خیل میگه سیاواش خیره خیره رفته پدرش نگاه میکرد سیاواش تو بشنید گفتار شاه همی کرد خیره به دوبر نگاه زمانی همی بادل اندیشه کرد خود جوونم با خودش فکر کرد بکوشید تا دل به شوید بگرد گرد اینجا یعنی سوه زن و فکر بعد خوشید که درش رو پاک میکنه. پیش خودش فکر کرد که پدر داره این رو میکنه. مکنه یعنی تجسس، جستجو، تحقیق الان محبقه ها رو ریسرچ به فرصلا رو در فارسیم پژوهش پجوهش یعنی کسی که کاره تحقیقی بیسه چه گمانی چنان برد خورا پدر پژوهت همی تا چه دارد بسر فکر کرد که پدرش داره او رو آزمایش میکنه ببینه تو کلش چه میگذاره این تو کلش که آوه چرا که بسیاردان از تو چیر زبان حس میکرد میکرده بیگه حس کرده بیگه به صود یا بس که گفته بیگه بعد از اینکه میکنه واقعا فردوسی در حد موجز میچه دارست مثل اینکه جمجمه یه کرده اون تورو میخونه یعنی هر چه رو خواهی دیگه. هر چه رو خواهید کسار ساله پیش آدم بگه جزیات زندگی رو مطرح کرده او، حرصه دو، بحث کرده او دقیق راه بعد از اینکه این, که این کرد که پدر من چکار میکنه؟ اگه من برم در حرم که گرفتاری با سود آقای کرد بعد جواب می ده شنید داد پاسخ که شاه مرا داد فرمان و تخت و کلاه تو فعلو از به من فرمان پادشاهی دادن تخت دادن کلاه دادن یعنی دستور سلطنت دادن از آن جاگه که آفتاب بلند برایت کند خواهد را هر تو شاه ننهاد بر سر کلاه میگه از اون جایی که آفتاب طلوع میکنه حالا هیچ شاهی مثل تو به شاهی نرسیده کلاه بر سر یعنی پادشاهی کردن تو توشاه ننهاد بر سرکلاق به خوی و به دانش به آین و راه خواست اینا دعایی که میکنه. اول دعا میکنه برای به که بعد حرفی که بزنی می که تمام گفتارها تقریبا بین تمام ملتها و دعا میشه این حاله ما می رسیم سلامون علیکم یعنی بر شما آرزو سلامتی می سلامتی بر شما بار وقتی میرید بازم دعا میکنید خدا حافظی همیشه گفتارها با دعا شروع میشه با دعا خرد میشه در مورد گفتگاه رسیم خیلی بیشتر کرد این دعا میکنه که از جایی که آفتاب تلوح میکنه تا الان کسی شاهی مثل تو ندیده به خوی و به دانش به آهین راه مرا موبدان ساز با بخردان میکرم منو چون رو بسیم که من رو بسیم پیش موبدان، پیش خیراتمندان، پیش بزرگان، پیش کار آزموده یا نه؟ بفرستین چون رو آقا و تیر و گرد و کمان اون چه لازمه مردی و است وگر، گر یعنی یا اگر یعنی میگه من رو با موبدان و بخیردان بفرست یا بفرست با پهلوانان یا نیزه و گرد و تیر و کمان که چون پیچم هم در صفحه بدکومهان که بینیم من چجوری مقابله میزونم با دوشتان ها وگر تخت شاهان و آین و بار یا بین چند جونوی که اول منو بفرسیم همرای دانشمن. دانشمند نمیخواهیم به میدان و میدان پهلوانی رو بیبینیم تو من اونس یا نه در تخت شاهان و آین بار و مجلس سلطنت و کارهای مملکت بازمنون و اگر تخت شاهان و آین بار اگر بزم و رود و می و میگسار همه این زمینه ها هست شما همه این من داریم این شبستان برم اونجا. چی مخونی کرد؟ چه ها در شبستان شاه؟ به دانش زنان چی نمایند راه؟ زنی که خودشو پشت تاپو باید میوردن آوردن و نمیذاشتن من درس بخوندن چیزی یادم به من مادر من میگفتش که از مادر من دیگه خط داشت این حرفا داشت ولی قبل از او میگفتش که دختران رو خط بهشون یاد نمیدهدن سواد یاد میدهدن سواد نردی که قرآنی به خودی دعایی بخونه ولی خط بهشون یاد نمیدهدن برای اینکه که میگفتن که کاغذ فرومی میکنه <تصفيق> این دختره پشت پرده مونده یه یاد نگرفته این چی میتونه یاد بده؟ به دانش سنان که نمایند را میگه و با این حال گری ایدون که آین شاهین بود ایدون یعنی چنین از مشخصات ها چهان همست به کار ایدون به معنی چنین و ایدر به معنی اینجا این دیگه دون شعر سعدی و حافظ نیست در شاهنامه هست، ایدون و ایدر گر ایدون که فرمان شاهیم بود میگه با این حال اگر فرمان شاه این است که من برم در حرمسرا بر آین او رفتن آین بود منم به فرمان او رست این است که فرمان او اطاعت کنم و بر آین او برم یعنی به روش او منم دنبال کنم اطاعت کنم تو به سبلش نوشده بود آین بار بار یعنی بار اصلا یعنی اجازه بار هم معنی داره نیست که آرام گوه یکیش اجازه هست و قادشاه بار میداده یعنی اجازه میداده که بیان به خدمتش بیز. این خدمت قادشاه رسیدن دستورات داشته و تشکیفات داشته, داشته. کمان اینجا الان هم چیز رئیز جمهور بخواییم بریم همونی که یعنی میگن بار دازن یعنی اجازه داش ها اینها را خوندی خیلو. بعدی که پیابش این هفته میزنه که منو حرم سران بسید چه کنیم به میدون بفرست یا با قیدمندان بسید بیشینم یا آزمایش بکنم ببین کار پادسایی رو چقدر بلدن من برم تو کار بکنم بدون گفت شاه ای پسر شاه آت تو زین فاقوز واقعا بدکمانی اینا کهش نبوده ولی سیاهش نمیدونه بدون گفت شاه ای پسر شاه آت همیشه خیرت را تو بنیاد باقش بنیاد بدون که ریشه و فیلی کم شنیدم بدیم نیکنید یکی حرف به این قشنگ میگلید جواب میشاریستگیه فری کم شنید فضایت همی مغز که این بشنگید مغز زیاد میشه یعنی عغز زیاد میشه یکی ترینیستگید فضایت همی مغز که این بشنگید ولی میگه نه، هیش فکر بد احساس میکنه کابوسم که سیاهوش فکر کرده که پدر من شی در نظر داره؟ منو میفرسه سراغ زن ها چه فکری داره؟ میگه هیش فکر بعدی به دل تاه نده؟ البته ها؟ مدایی دوتایی فکر همگره میکنه مدایییش انگیشه ی بد به دل همش شادی ها را و یا از غم گسل گسلیدن و گسستن به معنی بریدن نه بریدن مثلا دیش درخت نه بریدن معنی جدا شدن و از کسی بریدن رابطه را کرد همه شادی را یا از غم گسل سیابوش باش گفت که از بام داد بیایم کنم هرچه اون کرد یاد فردا صبح میام و هرچی شاق خرمودم اتقالی یکی مرد کن نام اون گیر برد زدوده زدوده دلو زدوده دلو اونها رو ظاهر نکن زدوده دلو زدوده اینا هی قیره من الفوز نگه نکنن تلخوز نمیشه یکی مرد نام اون گیر بعد زدوده دلو زدوده دلو زدوده دلو که بدخانه را هیچ نگذاشتی، داشتی کلید در پرده او داشتی به بحثار ایران به فرزانه گفت که چون برکشد که تیز به پیش خیاهوش همین را به پوشت نگر تا فرماید آن را به پوش. به سوداوه فرمای تا پیش او نسار آورد گوهر و مشک را بود پرستنگان نیز با خواهران، زبردت هشانند بازه کران چه خرشید سر برداد از پوست دار سیاهوش بیامد بر شهریار. بر او آخرین ترد و بردش نماز سخان گفت با او که فکت چه پردخت شد؟, شد چه پردخت شد یک بعد را بخام سخان های بایست چندید بران سیاهوش را گفت با او برو بیا دلها دل ها به دیدار نو درختن هر دو به یک جا به هم روان شادمان و توی دل زغم. توی دل تو برداشت پر دهده در هیل بد سیاه بش همی بود ز زبر شبستن همه پیش باز آمدن پر از شادی و بردسه آمدند همه جام بود از کران با کران پر از مش و دینا و درم زیر پایش هنی ریختند دقیق و زبرجز زمین بود در زیر دیگاه چیم. خوش آر. خوش آر. خوش آر. دیر دیوای چین پر از دز خوشعابش دوی زمین میو رود و آواز رامشگران همه برسران افسران گران شبستان بهشتی به بداراسته پر از توبگویان و سیاوشته به میان عیوان رسید یکی تخت زرین رفشندگی سر و برز پیروزه نگار به دیبا بیارا به شاخت بر آن تقصد سوداوی ماهور به زانه بهشتی پر از رنگو بود نشسته که تاوان سحیل یمن سر زلط جعدش سراسر شکن یکی تاج بر, بر سرنهاده سر بلند خلوه هشته تاپار مشکل کمند پر از دار نعلیم زرزین به در به پایی سداده در یا بوش را میشه نیچه فرد افتره آمد از سخت زوز آبه کرد یا آمد خرامان و بردش نمان که در در گرفتش زمان ایتراز و می چشم و رویش بگوستی نه یا آمد به این بازمو بازم سوز رو برسید نا یکی مرد نام او هیربت در حقیقت بعد نامش نبوده لغبش شده یعنی شخل شد یعنی رئیس آتشگاه. است. بعد این پاییتی به معنی رئیس و سرور و ساله رو که قبلا گفتم در عبستایی پاییتی به معنی رئیسی که در سپه بد و هیربت و اینا در فارسی آمده یکی مرد و, نام و هیر بعد و به دل و گشت بدز یا بوحانی بودن بیده که بودخانه را هیچ نگذاشتی تصور درستی فردوسی از آین زرداشتی نداشته اولا دوبام این که به احتمال قبی در دستگاه روستم و اینا در شرق ایران بیشتر بودایی بودن بود گفتن صورت فلسفی کلمه بودا اینکه گاهی در فردوسیب آتشگاه و بودخان و اینا با هم قاطی میشه اینجا میگه این هیربت بودخانه را رهانه میکردیش یعنی همیشه اونجور به معبد که بودخانه را هیچ نگذاشتی کلیدت در پرده او داشتی پرده اینجا نه نهرمسرا در حقیقتی کرد پرده که در نداریدی گلیدند که ندارید کلیدت در پرده او داشتی در حقیقتی سپهدار ایران به فرزانه یعنی به اون هیر گفت که چون برکشت هور تیغ از هور صورت میگریست از خور به معنی خورشیده و و هم بدر میشه که چون برکشد هور تیغ از این سعاهای آفتاب رو میکنه کنه شمشیش زه پیش سیاوش همین رو به خوش نگر تا چه فرمایه آن را بگیم. میگه فرزا میری پیش سیاوش میبینی چی دستور میده همونطور عمل بکنی بعد به سوداوه دستور به سوداوه فرمای. یعنی هیربرد به سوداوه فرمای تا پیش بوی نصار آورد گوهر و مشک و بوی و این چنین روی خوش ادریاب فرسندانگان نیست با خواهران زبرجد پشانند با زعفران زبرجد سنگ سبز رنگ است پیش زموررو البته از زموررو قیمتی کمی کم کرد رنگش هم کمی کم کرد صد زبوده‌ای یعنی؟ هستی صد دیانی پاکیزه خورشید سر داد از کوهسار سیاوش بیامد بر شهریار بر او آفرین کرد و همیشه اینطوره به حضور شاه که میرسه می‌بینی که همیشه تشریفات اینه بر او آفرین کرد و بردش نماز سخن گفت با او سپهبد به راز بَلگ مطلبی که بر خواهر اینو نورزل من اینو ور چیزی این مطلب نیست که جلو مردم بگن یا آهسته پنهانی پادشاه آش حرف زد که میری چکار میکنی این آدم رو تعیین کردن میری با هم میری خواهده میبینی زنبابا تو میبینی الاخه چون پرداخته شد پرداختن یه معنیش تمام کردن و خالی کردن یعنی میگن حقوق و پرداخت کردن یعنی اون صندوق پول تنفوش شد دمانشو دادن به اشخاص پرداختن عددی می میگه صبری که بود مایه سعدی تمام شد مایه منی پول دیگه صبری که بود مایه سعدی تمام شد سختی نکن که کیسه به پرداخت مشتری یعنی کیسهش خالی پرداختن یعنی خالی شدن چون پرداخت یعنی صحبتشون تموم شد هر را بخوان سخن‌های بایسته یعنی لازم چندی بران به هم گفت چیکار می کنیم وقت را گفت با او برو بیارهای دلها به دیدار نو میگه برو با بعد و دیدار تازه داشته باش امروز خوهرات را داری ساری می میبینید برفتند هر دو به یک جا به هم به هم یعنی با هم به به معنی با برافتند هر دو به یک جاب هم روان چا و توهی دل دیگه وقتی که تیر باد پردر ورداش سیاوش نگران نه راه حل تو برضو هر دزد در تیر باد سیاوش همین بود لرزان ز فر که لازم خوبی پیش نه این هیربده به دلیل همین بیتیم به دلیل که هیربد نمیتونیم بگیم و این هیربد چه غلط میشه چون کافیه نده شوبر داشت پن... این دلیل این که اینا بعد سفه بعد و سفه بود نیست و این که ما الان میگیم غلطه، همین بیت فردوسی وقتی پردر و برداشت شبستن رو من پیشباز آماده پر از شادی و بازمساز آمدن که ببرن به مجلس آرسته بعد مو میگه میگه همه جام بود از کران تا کران پر از مشت و دینا رو پر خوشو این بوی های خوش رو ظاهرن تو زرفای چیز میششتن و بعد نسار میکردن پخش کردن برای اینکه بوی خوشمدازه لذت هاست که آدم میبره. همه جام بود از کران تا کران پر از مشک و و پر زفران زمنا تشریفات اون روز مهمان عزیزی که میاد بهشون میده دیگه درم زیر پایش همی ریکدن عقیق و زبرگت برای میکدن یعنی پچ کردن و اینا رو اون خدمتگار ها و جمع کردن دیگه این ماهی خوشحالی بود این پولو میریختن خدمتگزارا و, و نوکرها و کلفتها و اینهایی که معمولا کار میکردن بعد می شدن که مقدار چیزی گیرشون موحید دیر احساسش کار این درم زیر پاش هم میریخن درم گفتن که درخم یونانیست کلمی وعنی پول نقره است یک مسخال نغره یک مسخال معادل 4.86 گرمی نزی که 5 گرم تقریب دینارم یونانیست کلمه به معنی یک مسخال تلاست برق دینار درن درم زیر پاهشم میریختند اقیق و زبرجد زبرجد برام میریختند زمین بود در زیر دیبای چین حالی قدمت پنکی از نمیستش دیگه تیبای چین پارچه عبیشمی پلوخت تیگه پارچه زمین زیر تیبا پر از در خوشاق رو گه زمین خوشاق همون خوشاقه در هم معنی موروارید دور یعنی موروارید کلمه عرب. دور که تو خوشاق میکرد؟ موروارید نیستم تو دریا پرش بگیم و آب به معنی تراوت و زیبایی همینجور که در چهره میگن خوش آب و رنگ دیگه آبی درکار نیست گفتم قبلا که این موادی که خانم ها سورتشون رو سرخ میکنن یا سفید میکنن که از قدیم میشه مزففی بوده ان انواع احسانش هست بهش میگن مثلا سفیداب آب آب نداره که توس سرخ آب آب نداره توس سفید آب یعنی ماده ای که رنگ چهره سفید میکنه سفید هم یعنی ماده ای که رنگ چه سفید میکنه این آب کنانی رنگ چهرد آب هم میکنوند فرهنگ ماهی نگاه کنید، شاید هیده تو هیشده تو منید شیطا این خطه چند که پر از مشک و دینار و پر زعفران. زعفران منظورش اینه که برای بوی خوش استفاده می‌کردن آره استفاده آره, آره برای بوی خوش هم استفاده میکردن به غذا می‌ذاشتن بعد این عطریات مازیار هم پراکی بوده هم مصف در زمین مثل گلاب گلاب الان هم ما هر دیگه مرسوم نیستش که بزنن ولی سابقا تو مسجدها مثلا که می‌رفتن بود در نماز که میکنن بعد یه کسی گلاب میاد دوره خاصی می‌ریه یه قطره می‌زدن می تو, تو بوی خوش بس. بعد تو حلوه توی بعضی خذاهان بودی گلاب میگهتنم می دیگه بعضی شیرینی گلاب میگهتنم میخوردن هر دو مصرف داشت زعفران هم بود. زمین بود در زیر دیبای چین پر از در خمشاب روی زمین می و روند و آواز رامشگران رود ساز زهیه به پسرم هست به منی رودخونه هم هست می و آواز رامشگران همه برسران افسران و گران تاجهای سنگین برسر داشتن دختر و خانمها و این هم شبستان بهشتی بوداراسته پر از خوب رویان و فرخاسته بهشتی چیه؟ خوشگل توش سیاده همه چی هست پر از خوطویان و پر خواسته یعنی مال و ثروت خانم بزرگ خانم سودابت وسط هرمسرا تخت بزرگ تشتو ملکه میگه سی آپشت رو به میان ایوان رسید به میان هم به مییان دیگه ولی که شعر درست بشه میکنیم به میان. ایوان به معنی کاخ آزمنی که ما نمیدونیم. ما از ایوان همون مط یا با چیزی که جلوثخت نداره جلو ساختهمون میگییم اییوان ولی یه معنی دیگه ای کاخ و ایوان مداره یعنی اون قصر داسانیان دیگه ایمان مداره خانه ای دل عبرتبین حضیزه نظر کن خان ایوان مداین را آینه ای عبرتان ایوان مداین این کاخ مداین سیاوش تو به میان ایوان رسید یکی تخت زرین رخشنده بید تخت زرین درخشانی بر او برز پیروزه کرده نگاه تخت زرین رو پیروزه نشان پیروزه نشان کرده به دیباب یا راسته شاخواب بران تخت صوداقه ماخروش دست برده بود تو خودش دیکید حاملت ارس که تمام هفت قلب آرایش کرده بود و سلمونی رفته و عیزا زده و ارس که همیشی بر اون تقصید ما ماخروی به سام بهشتی پر از رنگ و بوب نشسته چو تابان سوهیل یمن سوهیل یمن تابنده ترین ستاره آسمان. ستاره رو با سیاره اشتباه نکنید سیاره ها پلنت بهشون میگن دیده. اونا خیلی تابششون زیادتره یعنی زهره بسیار تابنده است خیلی پر نوره مشتری خیلی پر نوره ولی خیلی آسوم میتونی تشخیص بگیرین ستاره است یا سیاره است یا پلانت سیاره ها چشمک نمیزنن، نورشون پاک میبسیم ستاره ها چشمک میزن حالا دلیلش به کلی بمونه نجوم درس نمیزن ولی میون ستاره ها میون اختران و نه سیاره ها تابند ترینشون ستاره ای است که بهش میگن شعرائی یمانی اسم فرنگیشون راست سیمیروس یه سویز گشتم سوهیله و خیلی اعتقادات می این داشتن یکی این بود که فکر می که میبه هایی که رنگ می اندازه این سوهیل باید طالب بشه تا و اعتقادات بسیار اقوام شرقی خیلی این ستاره اعتقاد داشتن مصری ها این رو مقدس می برای اینکه وقتی شعرهای یمانی در افق مصر طالب شد توقیان نیر شده و همین در این فکر در در ی هم این شعره دو تا دو تا ستاره داریم به نام شعرا یکی شعرا یمانی س یعنی دو تا ستاره مزدووجن دو تا هم دور همدیگه میکردم تابانترینشون شعای یمانی است که تابنده ترین اختر آسمان هم هستتاب ترین ستاره آسمان هم هست و اینجا چون در افق یمنم هم یا میشه به معروف رو شعرا یمانی سیل یمانی. بران نشسته تو تاوان سوهیل یمن سر زلف جهدش شکن بر شکن سراسر شکن ببرشه تو نصحای قدیمی من شکن بر شکن جادم. یکی تاج بر سر نهاده بلند فروم هشته تا پا مشکین کمن مشکین کمن گیستوش گیستوش تا پاش گی یه وقت توی مجلهی من دیدم که نگاهی رو پردازی مجله‌های آشغال در تهران داشت بعد یه وقت راجع موهای خانم های مقاله می‌نوشود یعنی بودیم بود نصف خانم دکتری بود این موش پانزه اینقدر از بعد خودش بلند خود و خود خود. اینو به دست گرفته بود یه مقدارش به دست گرفته بود تازه تازه پاش بود و میگم من چجوری اینو مواظبت میکنم اینا خیلی موی بلندی داشت اون قلاده و ناجه تری چجوری و هر حال مال سودابه تا پاش میشتر نبوده حال ارز کنم که یکی تاج بستر نهاده بلند پروه هشته تا پای مشکین کمن پرستار نعلی نظر نعلیم یعنی کفش فکر نکنیم که حالا نعل اون چیزی که به پای عصد میزنن یا گاهی به کفش آدمی زدن میزنن اونو گرن نعل نعلیم یعنی کفش تا آنست پرستار کبش خانم دستیده برای این کبش پا رو یک دو آزار میده پرستار نهلای نظرین به دست به پایی استاده سرفکنده پرست بایست دو سرش هم پاینه برای اینکه بی تربیتی نکنه سیاهوشت رو از پیش پرده برفت پرود آمد از تخت سودابه تخت سریع از تخت اومد پاین بی آمد خرامان و بردش نماد تو رو دنیایش ببون کرد به بر در گرفتش زمانی درست وقلشی کرد بید بلش نگرد همی چشم رویش ببوسی دیر خیلی نیا آمد دیداران شا سیر سوداد بلا خاصله سیاهش میگه میگه بازید من از که خراره دانست که این این چه سلامتی ایزدیه نیست پس استاد سودابه حرف سران بوده بله بله گفتم به دلیل به همون دلیل اولین که خیلی زنه فیلی عشبگره و قبازه سیجی بوده میدونه سوچکا میکنه دوبوم این که به دلیل اون روشی جفداری که با کافیس داشته که گفتم پراتون طرف ترجه قدم هزار رو فضاحت بار میاره آخرشم سیاهاشو به کشتن میده با این حال کابوس دلش در به این آزاری برسیم جالب قصه نیست امیدوارم که بتونیم برسیم تمومش